هم نارد هم شد که بحث در وانه یه کلمات مردم مستاد علمان وانه شده من سرون خودشون در مرحبت اول در مخالفت قفیه صحبت سروندن در اینکه این, این مطلب ثابته به خاطر اینکه اصرام میشنم اینه ابلاغی ایشون ارثن در صفحه 75 از همین جلد تا اول این که آیا علم اجمالی مثل علم تفسیری مکم منجز هست بحث دوم هم در این که مبحث ثانی هم بر از اینکه که بیان باشه آیا شارع میتونه اجازه در مخالفت در حقیق بده و بعد آیا واقع شده یا نه؟ این منحجه بحث بود که مرمو اقصدار پراندازم ما یه راه دیگه رو حد کردیم حالا بحث اول این بود که آیا علم اجمالی مثل علم تفسیری هست یا نه؟ شد؟ برموندن که بله هست فهم کنه و شوهی رو نمتنن جواب دادن خلاصه جوابیشان است که در باب تنجیب چون معیار رسول به با علم اجمالی هم رسول تقاقید رو می کنه کما اینکه با علم تفسیر ولی زاق و هم فرمی بگید این دوستان نمی بینه اگر تهمید که فقط چون یکی از این دو کار برایش واجبه یعنی علم به وجود پیدا کرد مثلا وجود عفاف نفس دیدن دفتر خودش نوشته که در این روز باید این کار را انجام بدیم وکن عبارت خودش واضحه نیست آیا اون صدقه یا طلاق از علم به تکلیف پیدا شد علم پیدا کرد که تکلیفی داره یا مثل نماز ظواهر نماز جمعه در تمام زمین‌ها علم تکلیف پیدا کرد میگم محتضای قاعده باید احتیاط بکنه یعنی مزد. محتضای قاعده تنجیده در تنجیب شرط نیست که اون علم واضح بشه پس در این در باب تنجیب سرقی دین علم اجمالی و تفصیلی نیست و دلیگیشون هم وجدان و مراجعه به وجدان و اغلا و آخرش هم یه مثال دیگری که مثلا کسی بدونه که ازا نداره لا یه علم و از ما من هنه هون تکلیف به هنه متعلق و تکلیف یعنی. خب این مثال دیگه از شعنیشون هم مثال دارن که که در اینجا لایه نظر پس علم جمالی منعزیز خب که بگه منعزیز نیست اونجا هم میگه فهم رو کنه اونجا هم یه علم و نظر اگه میدونید خب اونجا میاد اینه که ایشون آوردن این مثال رو از تحلیل کاملی نفرموندن اما اجمال مطلبی که فرمودن خوب راسته این مطلب به جانی ماست در علم اجمالی به لحاظ خود علم اجمال نیست اجمال در متعلق این اجمال متعلق ضربه نمیزنید اینکه یعنی به اون اخرا هم نظرمون در باب علم اجمالی اون حکمه حکم معلوم است تفسیر چون تا دیدی تظاهر خون افتاد یعنی پیدا میکنه یه جول این درش ثغی نداره دیدی قصه خون دید. تو لحظه شنشتم من نکردم این این در روز جمعه این کار انجام بدم من کردم انجام این در روز جمعه این کلمه ی... دومش اون طلبه منم که اون طلبی رو خلاص درویشم این صدر و بد نوشته با همدیگه دوست درست خونه نمیشه خب اصلا نظر <تصفح> وقتی خون نظر کردن تعریف ما خانم نذر الله فخرده به پیدا میکنه اونجوری نیست ما خانم الله به مجردی که دیدنوشت من نظر کردم خب یعنی پیدا میکنه باز و نداره بکنه این دیگه جای در خوبی لازم نیست. ولی زاد در این جعبه این این بین تربیت این مجموعه مالی و تفصیلی هم تو کیشون فرمانده نمیکنه و ضرورت ندارد. ما بحث رو از زاویه دیگر اخترنا، همون سبکیم را سر معلوم نمی دیگر، بیشتر تو این مسئله از راه پدره با بیان باید بیشتر. یعنی اگر خداوندون تاریخ روز قیامت رو اخوال کرد که شان نزدیک انجام ندادی، نمیشه بگه بیان نداشتن. وقتی لحظه دنیویل نزدیم بیان که داشت دید که یک قطعه اون افتاد پس این بیان داشت خب اقاق بلا بیان جایی نمیشه بیشتر استدلاع متعارب و حضرت ما از کردیم به که به اون مسئله اقاق که مسئله متاخیره مسئله معلومه به ازدار به ازدار ما به اون خود اون صورت ذهنی کار بکنیم نه نمیم روی اقاق کار بکنیم البته تبر واضحه من چون چند بار تکرار کردن تکرار. باید قاطعاً بحث ما در اصول روی شبهات و حکمی کردیه باشه نه شبهات و موضوعیه مثلاً مثال که اینجا میزن توش موضوعی دیگه و هندیزه علم اجماعی رو در اهم قاعده باید بحث ما در شبهات حکمیه باشه مثلا نماز دو واجه و نماز کنه همه اینکه که کفره خونه اصابه کنه بین انایه خونه انایه امرهت اینجا علم با مثل نظر الله اداغ ما اینا شبه این موضوعی اساس بحث در ابحاث عصوبی قاعدتا روی ابحاث شباهات حکومی است نه این شباهات موضوعی بگه خب نتیجه اینها میشه که اینجا هم هجه حالا یک جهاری من اینه گفتم چون بعد در خدا یک نقطه پیدا میشه که اینجا توضیح میدن اگر هم مسئله ای که مثال میزن ندر وجوب و فاعلیت ندر مثلا اقامه صلوات در روز جمعه بی یعنی یعنی یقین داره که اقامه صلوات در ظهر جمعه یا نماز جمعه یا نماز ظهر اینطوری مثال تو حکمیه به این جهت می‌زنه اما شد که ما تغییری که خود از درخدا ما در باب تنجیز که تحت اون تصوری که ما در مرحله سومه اول جهد بعد از جرد اصطلاح ابلاغه بعدش تنجیده. تنجید اون جلیس که یه حکم اون رابطه با مکلط بیداره یه سوچه تنجیز بودش اگر مثلا حکم رو توی روزنامه ها تو رسانه جمعی ابلاغ کردن این مرحلی ابلاغه اگر مکنف در اون حکم قرار گرفت این رو اصطلاحاً مرحلی تنجیزیه مرحلی بعدی هم امیشه صالحی هستند این بقتر مباحث هجج هم راجع به همین تنجیز اونوخت ما اونجا ارز کردیم در اول بحس هجج تنجیز هم قباش به تعبیر مرحوم نایمی یا مرحوم استاد به وصوله ما ارز کردیم تنجیز حقیقت به تعریف تعبیر دقیق اصولی دو تا مرحله داره تنجیزی یک مرحله میکنیم. این مرحله تنجید اساسا دو تا نکته داره خوب دقت نکته ایجاد دایز در مکلف این بهش اسمش رو قرضه یک نکته تحرک مکلفه که مکلف انجام بده مثلا آب قرض آب یا آب میخواد دیگه خیر این بهش میگن قرضه ادونا یک قرض نذری یک قرض دور و توضیح داریم کرا را قرض اخصا همیشه بر بحث مترسل میشه هر وقت شما امر کردیم قرض احسا همیشه مترسل میشه اون قرض ادناس گاهی مترسل میشه گاهی نمیشه ایجاد دائی ایجاد انگیزه همیشه هست تا گفتین آفیار برای ایجاد دائی بست این تموم شد این تخلق روش نداره اونی دیگاهی که سخلق میشه ارتکاب عمل در خارجه در بحث حجیت هم ما این توضیح در بحث قرط دادیم که میان هم قرط کن مورد حجیه داره چی؟ یه احتمال مورد قرار را باشه یعنی انسان فیدا کرد جای جای میشه یه احتمال داریم عمل باشه لکن مطابق با قواهد و قضایی الان اونی که در بحث و حسوم مهم نه اون برد قرازه اقتصاد یعنی ایجاد داری پس مراد از هنجیز در این جاه و اونی که در مطلب در شهرند رسته در شهرند ایجاد داری بکنه همین مردان اون معنوم بشه صحبت سر اینه که این ایجاد داری باید رابطه با خود و پیدا بکنه لیکن ایجاد داری این رابطه رو یک رابطه ذهنیه یعنی این تکلیف این حکم این قانون به باشه مورد بعد باشه با صوره و کبرا در ذهن مکلف جا بگیره این صورت ذهنی رو ما در اصول امامی حلاجی کردیم چون این صورت ذهنی اقسام داره مباحث حجیت تلاجی این صورت ذهنی در اصول این چه چی دیگه این قضیه مناشه این صورت خصوصیات این صورت این ها ما در اصول حلاجیب این بخش حجیبه اینه که توضیحاتی هم سابقا کردیم یکی از مباحث اینه که ما در باب به اصلا تنجیز در باب کهرا اونم که در اصول ما بحث میکنیم آده هم تنجیز کهراست تنجیز صغرا را آده هم تو اصول بحث نمی اگر در قواعد فقهی برای تنجیز صغرا بوده، نه تنجیز کبرا. اصول مهرزه به استثناء استصحاب همشون برای تنجیز صغرا هستن. نه برای تنجیز کبرا. کبرا برمی‌گرده به اون حکم کلی، مثلاً مثالی که زدم. تکلیف فلا به وجوب فلا به وجود اجتناب تکلیف فلا به وجود و فاعلنا الاخری بحثی که ما در اصول داریم بیشتر ناظر به این قسمت ناظر به بحث تنجیز کبراست در بخش تنجیز این طوریه احتمال خودش منجز نیست از کردیم این ازم قدر گفتن نه احتمال هم منجزه نه دو شاخه میشه یه شاخه میگه ازن قانون همیشه احتمال منجزه یه شاخه هم میگه نه قانون الالی احتمال منجزه این یه که ما در بحثه قبل اشاره کرد نقطه اساسی ما هم در این که احتمال مونند نیست فهمه نقطه چیز خاصی نیست این احتمال دو جوره طبیعت احتمال یکی احتمال است بیستی هی جمعه کشت نداره مثلا انسان سان ساخن کار حرام نوروز و احتمال حرمت میده احتمال حرمت میده این تشکیف نقصانی این بیشتر مورد نظر و اصولی ها نیست دوم احتمال است که به درجه حجیت نرسد بیشتر نظرشون کن بگیم احتمال منصف هست مثلا بگیم این احتمال که مثلا کلان چیز مفتر بود چرا؟ چون ازه از فوق گفتن ببین یا یک رواست زریف در حجیت رو بکنیم تا گفتیم رواست زریف چون به حجیت میدرسه اینه این همین بست محبوب ایست که دید. یعنی احتمال یک درجه از چشم داره اون مراد هسته حسین احتمال دوری گردویی هیچ خاصیتی نداره احتمالی که یک زیر بنا داره یک نقطه‌ای داره لباس ضعیفی این فیلر احتمال میدید انسان احتمال کرد این احتمال کاشف ضعیف هست احتمال بنا این است که احتمال منجز نمیشه حالا این بحث اینجا برای کار خواهد لاشه. اگر احتمال در علم اجمالی باشه به اصطلاح ما در طرف بسته باشه خوب دقت رو کنید این احتمال منجه ده. اینجا احتمال منجه چرا؟ چون اینجا احتمال نقصیش اینه که اون چیزی رو که منشه احتمال شده اون رو حساب میکنن کنن اون حساب تنجیز و حساب احتمالی که در اصطلاح علم اجمالیش معناش اینه که اون جامع، این جامعه، جامعه انتظاری در روانه. این جامعه این تعیین این تکلیف یقیناً یعنی بشه جامعه احتمال در انتبا نه در خود اصل تکلیف در اصل این که نظر کرده و واجعه بر اشیاء فائده نظر یقین یعنی داره که بر فائده نظر رو واجبه این درش شوبه نداره خب لیکن اون نزلی کرده آیا صدره یا صلاح در این جرس رو بذاره احتمال میره صدره باشه احتمال میره صلاح باشه اون دقیق در اینجا چون این احتمال در دو طرف بسته و محدوده این احتمال بودیه این احتمال همفتی انشاءالله خواهد آمد سابقاً رو ارز کرد یه درس خود رو مرحوم استاد سابقاً ذهر کردن تو بحث مقدمات هرمیه درست که ما اینجا در دقیق از مجموعی و فاغند نایمی اینجا ذهرم برای اینکه این احتمال منجزن باشه شرایطی داره اینطور اونکه چیشون مبینیم بگیر احتمال منجزه نه یک شرط اولش اینه که اون تقریفی که وجود داره باید به نحر به اصطلاح علم در باشه. نه در موضوعی مثلا اگر گفت معلوم البولیه یا جبال شما علم دارید یا این بولیه هم اینجا دارید چون شما بولیه شما یا علم بردید این هرکی یا علم دارید اگر علم شما موضوعی شد دیگه علم اجمالی فرصت تنجیب ندارد چونه عنوان معلوم البولیه معلوم و نجویه و یجبال ما خونت تهلم انه هم نظران یک بخونه اگه ما خونت تهلم انه هم نمیدونه به پس یک نقطه باید این تاریخی باشه ما سابقه زابطه عرض کردیم هر جا در تبقاید هم واضحه یعنی تبقاید هست هر جا خوب روی یک موضوع واقعی این تاریخی است در طور کلی مثلا گفت اقتصابه که من اطوال مالای و کل لحمه این مالای رو که لحمه علم تاریخی است بر علم تاریخی است صبح علم طریق برمو کنیم هر جا حکره رو واقع علم تاریخی است ولذا علم موضوعی مرونه زائد می‌خواد. مثلا ما کنت تعلم و انهو برون پسته اگه این یور شده دیگه علم موضوعی هر جا حکره رو واقعه اکمل آلم علم تاریخی است لاتو سل خلفن پاسه علم طریقی فاسد علم هر کسی علم پیدا کردی شد این پس این قائده اولی دو نسبت احتمال انتباه اون معلوم علا حد باشه که میادید اشانا مثلا اگه قطعه بول افتاد 90 درصد توی یکی 10 درسته توی یکی اینجا این مجموعه تو منحب میشه که خواهد آمد و شرایطی که برد این شاید طبقی یک شرایط معینی که یک نکته شینی پس شما تا دیدی قدی خونخو ساخت ان پیدا کردین مصاب با بول مصاب با دند ملاغی دند تمون شد ما علی مخلی... مقدم ما دیگه به باب اعقاب قارن ندیم مجموعه از اوقات اعقاب شما تکلیف داشت اشاره از ملاغی دند این چون دند دیدین گفتا لكن این ملاغی دند این انائه یا اون انا این مشخص اینجا احتمال از اونجایی که یقین ملاقات بازن احتمال احتمالی که شما می دین این انا یا اون این مرحله احتمال شما اینه و ملاقی بازن علم درش طریقی موضوعی نیست واقع مراده واقع در این دوتا موجوده از این دوتا خارج نیست نسبتش هم به این دوتا علا حد سواه اینجا مدعا اینه خوب دقت بکنید موضوع اینه که خود انسان عقل انسان چون عقل انسان که عقل انفعالی داره که عقل افلاقی داره فعلی یا اجدایی داره یک عقل انفعالی داریم یک عقل اجدایی این دو تا نقطه فنیه آیا پای عقل انفعالی و فعلی و ما اجدایی رو به پای احتواض قانونی بکشیم یا نه ظاهرا بله عقل قبول میکنه. اینو اول قبول ما عقل افداعی اون اون چی میگه؟ میگه اینجا ملاقی دن وجود داره این عقل افداعی اون چون دیدین؟ عقل افداعی ما چی میگه؟ میگه این هم احتمال پنجاز درصد توش خونه اون یکم پنجاز افتر از این دو هم خارج نیست نسبه داشته و علاحت دل سوا تو هم از ملاقی واقعی اشناک نه ملاقی معلوم بزرد. اینجا عقل ابداعی میاد چه کار میکنه؟ همون حکم رو که داشت یعجی بول او رو تکثیر میکنه میگه یعجی بول اجتناب از این یعجی بول از اون چون واقع لحاظ شده نسبه داشته هم علا واحده ولی ذهب ما سابقا یعنی را باشه از کریم شیخ انصاری در اول رسال بعد ما آیون ایشان فرمودن شک و انلوه زمه افل حال است و سابقه و اعلام از این ظاهر عبازیشونی که در با استصحاب لحاظ شده حالتیسا ما انز کردیم در تمام اصول لحاظ هم اصلا فرد اصول با امارات همین اصلا فرد اصول با امارات همین تو ام امارات شما لحاظ نداریم رفیر اصول من در در حرم بازید شما لحاظ ندارید گاز بود در حرم بازید وحییه اما تو اصول دائمه لحاظه توی اصول لहांत لحاظ بودن به کجا شده این مسئله نظام این قاعده اساسی که اگه شما روش مسبتات اصول حجه است نکته شده که چون در بابه امارات لحاظی نیست مسبتاتش حجه در باب اصول خیلی لحاظیه به همون مقدار لحاظ حجه مثلا گفت کون اسد این فقط لحاظ شجاعت کرده ببینید اصولاً همین قبيله نمیخواد بگه از ذعی شجاعت تمشیره فقط به لحاظ شجاعت دری آثار بار نمیشه شید حال از سها رو بیاوز در کار اگر گفت فلان شخص یزیده این لحاظ کرده فقط خود این شخص رو بایددید این معناشی نیست که مادرش هندهمثل پله جواب گوسیان تو و مع بیا است ج جو ااصل اوننا رو نمیگیر دقدریفهم این روزی شما خ و غیر تبد تسی هایشون هم نباد. خب اون یه نکته دیگه ای داره خطی یا غیر خطی باز برگرد به عرف که این واسطه از بس خفی و عرف عین اول میشه نکته خاصی هم نیست روشن شد پس این مطلب این ثاره اساسیه شما وقتی میخواید یک مطلبی رو به عنوان واقع بگین عقل انفعالیتون بیاد یه جوره به عنوان عقل ابداعی و لحاظ باشه جور اصول عملیت این قبیله این من کلام گالی اوقات در لحظه حکم رو نگاه میکنه یعنی شید یا وجوب اشتراک آمد وجوب افاق آمد اینو نگاه میکنه از این میخواد ابداع بکنه گالی اوقات میگه مثلا فرصم این زی دیروز زنده بود دیروز زنده بود اموزن زنده گایی این موضوع رو نگاه میکنه گاهیو مثلا فرصوی می دارم من گوش از قصار مسلمان خیده دیگه از قصار خیلی برو بخورش دادن نبیدیم؟ آمده این گوش رو به لحاظ چی نگاه کرده؟ به لحاظ این هیه مسلمانه به این لحاظ که نگاه کرده گفته بخوره چه مدکازی قصار مسلمانه شده پس, پس بنابراین اصول مطلقا دائمان لحاظیه این طور که استسخاب روحه به من اولا کل بستان مره کلو اصول این طوره فقط نقطی اگر شما کنید من یمین پیدا کردم اشتنافر نجیز آمد یمین پیدا کردم نیمیدونی این طرف یا اون طرف این یاد ادعاقی ابدادی شما میگه از اینم اشتناف نمی این نجیزه میگه از اینم اشتناف خود. از اونم اشتناف خود. من دیدم این مسلمان این رو ک شما اون رو با مکنی تذکیر داده موزکان من الان در سجده هستم خوب دقیق رو کنی آزی تجاوزم همینطور امام چی می فرماین بلا قدرت کرد یعنی چی؟ یعنی تو که تو نماز هستی خوب دقیق کنی این عقل انفالی تو که هم دو قول که خوندی این عقل انفالی تو که سجده که هستی الان که این عقل انفالی، تو که میدونی که سجده بعد از رخوه فجر بعد از روکوه روکوه هم بعد از همزه خود دقیق کردی؟ از مجموعه اینها چی درست میکنه؟ این قسمت ادگاهیش چیه؟ بلا برکر کرد ادگاه کرد پس تو روکوه انجام دادی؟ و نظام ما همیشه از کردیم که از حواله اساسی در بابه در بابه اصول یک نقیقی نکات کفتنش دارن از در اصول شما دائما با اون صورت تعامل تون نه با میکنه این یکی از موارد اساسی و اصول با اماراته یعنی غیر اون صورت ذهنی شما رو میگیره طبق اون صورت ذهنی حکم این شخص ببینید یه شما نماز نمی خونید دیگه بله میگه حمد قراءه نخوندید بله میگه خودتون نماز نمی خونید بله نه مه این قضیه بله الان میگه تو سجده نیستی بعد. میگه نمیدونی که تجزئه بعد از رکوع رکوع بعد از حمد پس تو قبل از هم رکوع و بعد از رکوع انجام دادید تو نماز هستی پس تو رکوع انجام دادید این پس تو رکوع انجام دادید ابداعه اینید برا قبرکت این ابداعه اینطور نیست که فقط استصحاب لحاظ باشه کل و اصول لحاظه این نمه لحاظ که لحاظ شد این کیفیت هست. چون این نفره شهر در کلمات فاید گفتنم اقلاهی زجا ما این ویزا در یک نوعه باز کردیم و نزا در هر مورد هم دقت دفت بکنیم ما میگیم بگیریم چیجوری لحاظ کرده بود مقرار لحاظ تکیب آثار میدیم سر سره اساسیش اینه اینجا لحاظ کرده من وجوب اجتناب دارم داریم من وجوب وفا به نرد. من وجوب وفای به نرد دارم تو دفتر نرشان اما ما بین هدف و صلاط ادغام و نفسولا فاصله می این که هست ارسالش هم که علمای پس تو هم صدقه رو این رو انجام بده هم به صدقه هم به صلاط تقسیم راست طور خاصی در بین که را یا مطابق و نیست روا از روایت خاص باید یه بحث دیگه هست این که روایاتی که کلش این لک حلاس اون بیا دیگه چه جایزه قدیم دوران تاریخ از راه ادله سمعی آمده باشه چرا همین مقدار که تو جر داری که صبغت این منشأ میشه که شاره جمع بکنه این بحث دیگه پس بنابراین بحث اول آیا علم اجمالی به تعبیر استاد تنجیز میکنه مثل علم تفصیلی یعنی چی یعنی یه اصول تاریخی جاری از هر اثر به بحث ما رو اصول میکنه اما من طبق بر کلمات بعد اون نتیجه نهایی در توازن خود نرسیم حق همین است که حضرت استاد فرمودند این علم اجمالی تنجیز میاره البته ایشون توضیح ندن کافیه لكن این تنجیز هرلی به لحاظ ال روشن میشه به لحاظ حرمت مخالقه قطعیه و او مخالقه قطعیه نداره این شویه بحث دوم رو میشه بحث دوم آیا شارع میتواند به اصطلاح آنون گذار به اصلاح میتواند اصول ترخیصی در اصلاح علم اجمالی جاری کنه یا نه؟ نسبت داده شده به صاحب کفران که نسبت شده خیلی وصواست دارن تا خودم نگاه نکنم که مددی اون زیاده شما استاد نیزند تکمدمشید گی نه مراجعه کنم اول مراجعه دوام نرسه میشینید اشکال باشه که گفتن اشکال نداره که اصول تاریخی اولت هرست کردم ادی از بزرگان ما از ما و مجلسی پسی هم میگه اصول تاریخی در هر دو طرف میچرخی میشه در علم جمادی روز اول دست ازند در شتاب دارند اروپایی هتیس سیو ایشون یه علم جمادی و نجدت و یعنی احتمال اطراف اجمالی با شبه بعدی فهمه بکنید از این جور نرم شده که شارعه می تونه ترخیص بکنه یعنی, تب... یعنی به عبارت دیگه آما اینجور گفتن. گفتن اگر علم اجمالی منجز شد که تفسیری آیا به نحو اختزاز یا به نحو الیت تامه اگر به نحو الیت تامه بود شارعه ترخیص نید اگر به نحو اختزاز بود شارعه می تونه ترخیص کنه این استاله همه اصطلاح شیه بحث این است که علم اجمالی فی نفسه منجزه و فی شکاره مثل وصول ترخیص میشه کلوشی که حلال رو ت... به اصطلاح اجازه بده چرا سر شیه سرش اینه که ما در دین ارتکاب خود عمل یمین به مخالفت نداریم یعنی مخالفت بعد از اتیان اطراف پیدا میشه یعنی اون حکم واقعی ما مخالفت با حکم واقعی کردیم بعد از اسیان اطرا بگه این اشکال نداره شارع میتونه حکم ظاهری قرار بده بعد همون شارع ولی این حکم ظاهری منتحی بشه به مخالفت با واقع این یه بحث مستقلیست انشاءالله تو بحث بحث حجر زن انشاءالله میاد کیفیت جمع بین این حکم ظاهری و واقعی اشکالو جزم می‌کنیم مبانی هر اینا مختلفه و توضیحاتش واردن. بیشون صاحب گفتن که اشکال درام به ذقیقهت جمع بین حکومتیه واقعی عرض کردین میشه بین این دو تا جمع بکنیم. باز واقعا هم شده حالا. حالا هم جمعش هم اما واقع دو تا مثال مثل کی شوهره محسوره که اگر شوهره محسوره بود آروم می‌گند میشه اثاث رو انجام داد. خب با اینکه معلومه برای اتیان اعصاب می‌دونه که مخالفت با واقعش این چه شوبه بدوییه یعنی ما همه شروع سو حسابه اساس اساط مسلم جاری بکنیم اساس تازه در بعد از گذشت یک سال دو سال کمتر نمی‌فهمیم که بالاخره یک نتیجه واقعی هم بوده دیگه همینجوری که هم واقعا طاهر بشه در هم در شوبه بدوییه هم در شوبه غیر محسوره شما مخالفت با واقع انجام میدید و این سرشان این میدونن اینطوری که ایشون نعره کردند. البته این تقریبا استاد چرا میگن تربیه استاد چون این اسطلاح یه مقداری فرق داره با اون اصطلاح متعارب صاحب کفایی نشد من مراجعه کنم اگر مراجعه کردن ایشون میگه به مالکرناه هنان مردین الان که جمع بین الحکم زاهری و الواقعی من ان الحکم الواقعی لیست فعلی من یعنی جمعی الگه ها این یه در حال از ایشان, ایشان حکم واقعی خیلیه خیلی خیلی نیست حکم ظاهری خیلی وقت رو زمین حکم خیلی و حیرت‌بری نشون نداره اونی که طعاو روزینشون اشکال داره به این حکم فعلی اون اشکال داره اما یکیش خیلی نباشه و یکی خیلی باشه اشکال نداره حکم ظاهری رو فعلی میدونه چون علم داره حکم واقعی رو هم غیر فعلی میدونه اینطوری که ایشون بعدن توضیح زدن مرحوم عسا که فعلی واقعی فعلی فعلیت و به علم می‌بونه. از جمعی جهاد با فعلیت پیدا بکنه من جمله جهت علم می‌بوونم. تا ما علمش پیدا نکردیم فعلی نیست. علم و هر به ظاهری در مورد فعلی تاریخ بین فعلی و معرفی مشکل ندارد. این خلاصه ای که مردم اصلا نه مثل در دوره سبک کلامی شوم ترسیده شدند. تو ذهنم بوده چون که این تکه‌گویی را نمی‌نکنم مال جهتان که. شاید خود من تقریب دیگه درده هم دیگه محلت به قامل نمیدونم نه بعض نیشه همه اصلا خب میگه گه اشتران حکم شعیلی این طرف که من الان انجام میدم طرف اول خب نه بازم اول انجام بگم باشه سال اولی این به عنوان این حکم اجتنابزی پس اساس هایی میشه تو این بکنه بشه اشکال نداره الان یقینش و اساس الهل بعد از ارتکاب همه میزنه که با حکم واقعی مخالفت شد میگه اون حکم واقعی در این ارتکاب اطراف فعیلی نبود تجویل اصل نباشه نباشه ببینیم اون بحث ترجیح و بحث بردی اون بحث بردی زهر. من قبل از این که وارد این بحث بشم استاد اشتال فرمودن بیشان که این فع علم تأثیر در فعلیت و حکم نداره و فعیلیت و حکم فعیلیت موضوعه خود تحبیر استاد من این رو صابقا چند بار توضیح دادم متاسبانه کاری باز یعنی مجبور تکرار رو کنیم اصلا کلمی فعیلی در اصطلاح اصولی های ما متعصفانه معنی واحدی نداره استاد هم اشکال میتونم به صاحب کفاییه که فعلیت بینی نیست که شما بگید این به شگاه در استعمال مشاهده اصطلاح. من اصطلاحات رو سابقا برای تونم مثلا استاد فرمین دو مرتبه بیشتر نداره یکی مرتبه جمعه که مرتبه فعلیت. جمعه. جمعه. این ترام مرمون ای استاد یه اصطلاحه. به این کلام همیشون از ناینه گرفته شده ناینه هم اصطلاحشون همین ایشون حکم دو مرتبه میدونن این مرتبه جعل میدونن که انسان انشاء میکنه حکم یه مرتبه هم به حکم و موضوع در خواهد مثلا شاره گفت اقلی سالات به زور کشتن این جل شد الان مثلا سالات نزدیک ده الان مثلا دو ساعت نمیه تقریبت تا دو, دو همونده الان ما وجود جعلی نماز ظهر داریم، الان ما فیلی نشده‌ایم. تا از آن چند فیلی میشه؟ تا زبان شد؟ یه اصطلاح در فیلی اینه، و شنیدی اصطلاح؟ هر وقت موضوع فیلی شد، موضوع هم در اصطلاحی نهایی هست که تکرار کردن می‌کنیم. هر چی که در لسانه دری بیاد و خارج از دایره طلب باشه، فوق دایره طلب باشه، این موضوع در اصطلاح شده هرچی در ذیل داره طرف و در تحت داره قلمروش شرطه مراد این اصطلاح فوق طرف و تحت داره قلمروش شرطه یا اصطلاحیه بیالا یعنی هر چیزی رو که شارع می‌خواد از ما اون شرطشه شه هر چیزی که شارع نخواسته اگر پیدا بشه تکلیف میاد اون موضوعه تکلیف اونی نمی‌خواد مثلا اصطلاح داره ما مقضیه که جمله اكل من ببینید خود عالم فوق داره تلده یعنی مطلوب نیست که شما عالم ایجاد میکنید اگر عالم بود اکرامش رو کن. اما اگر گفت لا ثلاثه لا به تحروف شما بعد از اون تحره ایجاد میکنید این استلاح هم اونی که تطریف بشنه میخونه میگه تحت داره تلده اونی که تطریف بشنه میخونه میگه فوق داره تلده یه استلاح هم باشنشون یا بعدی چیزها مطلوب و حصوله بایدی خفزی که در تکیجتان درسان دیگه هست مطروض هفزه این اصطلاح مطروض هفزه مطروض هفزه مثلا اقیم سلاع دلوک کشم خود سلاع مطروض هفزه یعنی خواسته اما دلوک مطروض هفزه دلوک شمش یعنی اگر دلوک شد نمازو کن این صورش اگر مطروض شد خوق داره تلقه. و verbaleseAA این اصطلاح را داره هر چیزی که موضوع بود یعنی حوک دائرین کلف یعنی محفوظ و اگر اون فعلی چون حوک میشه اگر گفت بعث مل عالم شما در جایی از عالم نیست خب حوک برات جایی عالم نیست که میکنیم اما بر شما لازمه ایجاد یاد عالم بکنیم اما در منزل شما عالم آمد حالا عالم پیدا شد این محفوظ و حصول حالا اظهارش شد درستان این خلاصه نظر مرموم ناییم شد بوضوع یعنی محروض الحصول محروض الوجود هر وقت قیدا شد فعلی شد خود فعلی نشد نیست اصطلاح هم تاکویی اصطلاح هم که این مثلا به سابکیبای تحمیم کنیم این اصطلاح هم نمید تحمیدیت اصطلاح هم خود ما این تحمید اصطلاح برای دیگر درست نیست یه اصطلاح یه اصطلاح همیدی اون اصطلاح متعارفه و از کلیم که ظاهرند اون اصطلافشون آید رو جدی هم نرکند دستادشون سا و اون این که تاب کفایه در اون اصطلاف هر وقت حق به داعی جدی بود میگه فکری هر وقت به داعی امتحان و اختبار میگه اینشایی یه اصطلافی رو ها دعوانت اون ذریعه یه حق اصطلاف مثل فلسیم بگیم که نل... نل... نل... نل... نل... نل عمران مثلا, ان... مثلا زبه اصف ابراهیم عواضر امتحانی عواضر امتحانی میشه یه انشائیه اونجایی که تذبیه میگن این هم به اصطلاح اینجا اصطلاح سومی مرحوم آقای خلیل علکنده که مراجعه کنید من بحثات شدیدی پیدا کردم بس چون خودمون قاعدن داریم می خیلی یه اصطلاح هم این علم اگر از همه جهاتش تام و شد یعنی ما اصطلاحاً این به ما ایل رو تنجه رو ما بودیم ما گفتیم ایل تأثیرش در تنجه رو زدیم بکنم ایشون یه ایل تکییف منجر سهلیم او اون هم اصطلاح پس حکر وقتی فعیمیست که تمام جهات درش جمع بشه نه جمعه ایل یعنی میشه منجر بیان اصطلاح این چند در اصطلاح شد تا اینجا سه در اصطلاح یه اصطلاح چهارم یه هست که ما غالبا او رو بکار میبریم و اون این که حکم مرتبه انظام یا تبلیه یا رسانعی یا ارسال رسول تو اون وقت فعلی بشه دی. این روی ازداریه یعنی مرتبه جمع اولین مرتبه بعد جمع فعلیته پس فعلیت یعنی ارسال کار به موضوع نداره موضوع که محقق باشه موضوع داره الان حکم اما زور فعلیه وقت ازانم نشد زور نشد فری هر حکمی رو که خداوند ابلاغ کرد میشه فری یعنی یک اگه بخوای ما چیزی اصطلاح نداریم که ما این اصطلاحات داریم که این اصطلاحاً درست است بیشتر دارید من اون استاد اصطلاحیشمون اینه ایشون میگن حکم یک و اصولی که مثلا برای حکم دن. میگن دو مرتبه بذاره مرتبه شعر مرتبه فقیه روشه جایی که ما زدیم گفتیم حکم یه داره این دو مرحله داره جهر سه تا مبادی جهر داره سه مرحله بعد جهر داره بعد جهر اول فعیلیت بعد تنجزه بعد امتصاله حالا یک آقای آمده پرسته مثلا اینطوری که اینطور اونی که در تنجزه گفته فعیلی ناکنه. اینا اصطلاح تو اصطلاحات خیلی خودمون خود رو معتل نکنیم ایشون محادیه نقطش اینه اون نقطه جمعه بین حکم ظاهری و واقعی میگه اون حکم واقعی منجز نشده حکم ظاهری منجز شده بین دو تا حکم منجز و غیره منجز تا آرزید فقیلی و غیره فقیلی مهم نیست میگه اون تام و تمامه اینه که تام تمام با تا هم که شما هر طرف اساس اصافتها رو تو این اشکال نداره رو تو اون اشکال نداره شما به اخیل فهمی حرام مثلا پس مانه ای نداره از اجراء اصول در اطراف به اجمالی محل علم ببار محل علم ببار اصول ترخیصی رو یعنی اقتضا داره حالا اگه اصول جایی رو به جدیه رو بحثیت دلیریت تامه داره تنجیز نداره رسال الله علیه